ما تو فرقندهای این مو 60 چهره گمبر داریم ما تو فرخوانده های این مو شش تا چهرای گمبر داریم هر چهرایی پیرجون هر رو با خیر و خیرات خور داریم هر چهرایی هر هروش با خیر و خیرات خور داریم شش تا پیرو ساری سی رو به دیدهش و گمبر دارا همابرون گذشته گون شو یاد کراوی I'm یشاد وسای بانو مخداو مو بده واجا واجا به هر کی حقی بهروش از گنبور هر کی حقی بهریداره بهروش از گنبور ما تو فرخوند آین مو شش ای داریم هر چهره ای پنج با خیر و خیرت کرد داریم به خیر و خیرات کار